داستان دختر شاه پریان نوشته لورد دانسنی ترجمه دکتر آرش حجازی ارائه شده در کانال تلگرامی هزار های افثان، داستانهای ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش بانو بنفش دو صفحه 25 بخش دوم کوههای سرزمین پریان پرتوی از نور خورشید صبحگاهی به درون اتاق دراز و کم اساسیه آلوریک در بالای برج تابید آلوریک بیدار شد و یاد شمشیر جادوینش بیداریش را سرشار از لذت کرد احساس خوشنودی حاصل از فکر کردن به یک هدیه تازه طبیعی است، اما لذت ویژهی در خود شمشیر هم بود لذتی که در لحظه بازگشت اندیشه های آلوریک از سرزمین رؤیاها ها موتن خود آن شمشیر با افکار او هماهنگ بود هرچه هست بیشک تمام آنانی که به شمشیری جادویی دست میابند هنگامی که هنوز نو است این لذت را همواره به وضوح حس کردند کسی را نداشت تا با او ودا کند فکر کرد بهتر است به جای این که بماند و مجبور شود برای انتخاب شمشیری غیر از شمشیر محبوب پدرش توضیح بدهد از فرمان پدرش پیروی کند و به شتاب به راه بیفتد. بنابراین حتی برای خوردن چاشت صبر نکرد. کمی غذا در توبره گذاشت و مشک چرمی مرغوبی را با تسمه بر آویخت اما برای پر کردنش معطل نشد. چون میاندیشید در سر راهش حتما به جویباری خواهد رسید شمشیر پدرش را طبق معمول به کمرش بست و شمشیر جادویی را از پشت به شانهش آویخت سپس با گامهای بلند از قلعه به دره ارل رفت پول کمی با خود برداشت تنها نیم مشت پول مسین برای استفاده در دشتهایی که میشناسیم چرا که نمیدانست در آن سوی سرحدات شفق چه سکه یا وسیله‌ای برای تجارت به کار می رود. در دره ارل به مرز پایانی دشت هایی که میشناسیم نزدیک بود آلوریک از تپه ها بالا رفت دشتها را پیمود و از جنگل‌های فندق گذشت در دشت‌ها که پیش می‌رفت آبی آسمان مهربانانه بر او می‌تابید و به جنگل‌ها که رسید هم همان آبی به همان درخشش در پیش پایش بود چرا که فصل رویش گلهای استکانی آبی بود غذا خورد مشک آبش را پر کرد و تمام روز به سوی شرق سفر کرد و در هنگام غروب های سرزمین پریان شناور و با های روشن فراموشم نکن از دور دید در پشت سر آلوریک غروب کرد و آلوریک به آن کوههای آبی روشن نگریست تا ببیند رنگ چکادهاشان چگونه دگرگون می شود و در شامگاه شگفتی می آفریند. اما آن چکادها از شکوه زرفشان خورشید در دشتهایی که میشناسیم هیچ رنگی نگرفتند هیچ چینی در شیبهاشان محو نشد هیچ سایهی جرفتر نشد و آلوریک دانست در سرزمین پریان هیچ چیز در وابستگی با رویدادهای اینجا دگرگون نمی شبد. نگاهش را از زیبایی روشن و صاف آن چکاتها برگرداند و به دشتهایی که می نگریست و در آنجا های آدمیان خاکی را دید که بامهاشان در بالای های زیبای بهاری در نور خورشید محف شده بود همچنان که زیبایی شامگاه گسترده میشد، در میان آوازهای پرندگان و عطر سرگردان گلها به سوی کلبه های دشت هایی که میشناسیم، گام برداشت شامگاه دامنش را گسترد تا نخستین ستاره شب را در خود بپذیرد اما پیش از پیدایی آن ستاره، ماجراجوی جوان کلبه مورد نظرش را یافت. بالای درگاه آن کلبه، تابلویی از چرم بزرگ قهوه دید که با حروفی غریب و با آبتلا زیستگاه چرمسازی را نشان می‌داد. در زد، مرد پیری بیرون آمد، کوچکندام و از سالی خمیده بود و هنگامی که آلوریک خود را باز شناساند، بیشتر خم شد. مرد جوان برای شمشیرش غلافی خواست اما از خاصیت شمشیر چیزی نگفت به داخل کل برفتند همسر پیر چرمساز در کنار اجاق روشن نشسته بود با شناختن آلوریک برخاست و در برابرش کر کرد سپس پیرمرد در کنار میز بزرگش نشست سطح میز سیقلی و براق بود مگر در جاهایی که در طول زندگی خودش و پدرانش با افزارهای کوچک چرمسازی سوراخ شده بود. شمشیر را بر زانوهایش گذاشت و وارسیاش کرد. از دیدن دسته و محافظ ضبر و نپرداخته ی آن تعجب کرده بود. چرا که میدید شمشیر از فل خام ساخته نشده است. نیز از زیاد شمشیر در شگفت شد. چشمهایش را بست و به اندیشید. سپس دریافت چه باید بکند؟ از همسرش خواست چرم مرغوبی برایش بیاورد. بر روی آن تکه چرم دو قطعه را کمی په از شمشیر مشخص کرد. آلبریک از پاسخ دادن به هر پرسش او درباره آن شمشیر پخن درخشان تفره رفت چرا که نمیخواست با گفتن ماهیت شمشیر ذهنش را آشفته کند. همین که دمی بعد که از آنان اجازه گرفت شب را در آنجا بماند به اندازه کافی آنان را آشفته کرد چنان با عذرخواهی به او اجازه دادند بماند که گویی خودشان تقاضای لطفی کرده با وجود هرچه در خانه یافتند در دیگ پختند و شام خوبی به آلوریک دادند و با وجود اعتراض های آلوریک بسترشان را به او دادند و برای خوابیدن خود تودهای از پوست در کنار آتش فراهم کردند پس از شام مرد پیر دو قطعه پهن چرم را برید و لبه هاشان را به یک دیگر چسباند. آلوریک راه را از او پرسید. چرمساز پیر از شمال و جنوب و غرب و حتی شمال شرقی گفت. اما از شرق یا جنوب شرقی هیچ نگفت. هرچند با همسرش بر لبه دشت هایی که میشناسیم میزیست، اما به آنچه ورای این دشت ها بود هیچ اشاره ای نکرد. جایی را که روز بعد سفر آلوریک از آنجا آغاز می پایان دنیا میدانستند آلوریک در بستر به گفته های مرد پیر اندیشید گاهی از نادانی او شگفت زده میشد و گاهی می اندیشید آن زن و شوهر تمام عصر زیرکانه از سخن گفتن درباره شرق و جنوب شرقی خانهشان تفره رفتهاند فکر کرد شاید پیرمرد در دوران جوانی به آنجا رفته باشد. اما حتی تصور آنچه چرمساز در آنجا یافته بود برایش ممکن نبود سپس به خواب رفت و در رؤیا حدسهایی درباره سرگردانی پیرمرد در سرزمین پریان زد اما جز چکادهای آبی روشن کوههای سرزمین پریان راهنمای بهتری در اختیارش نگذاشتند مدت درازی خوابید پیرمرد بیدارش کرد، به اتاق نشیمن آمد، آتش درخشانی می سوخت، چاشتش آماده بود و غلاف درست به اندازه شمشیر ساخته شده بود. پیرمرد و پیرزن در سکوت از او پذیرایی کردند و دست مزد ساخت غلاف را از او گرفتند، اما حاضر نشدند برای مهمان نوازیشان پولی بگیرند. هنگامی که آلبریک براه افتاد، خاموش به اونه نگریستند و بدون کلامی تا دم در بدرقه اش کردند. امیدوار بودند به سوی شمال یا غرب برود، اما هنگامی که آلوریک با گام های بلند به سوی کوه سرزمین پریان رفت، نگاهشان را از او برگرفتند، هرگز به آن سو ننگریسته بودند. و با این وجود، آلوریک همچنان برایشان دست تکان میداد. چرا که نسبت به کلبه ها و مزاره این مردم ساده دل احساسی داشت که آنان به سرزمین جادویی نداشتند. در آن بامداد تابناک از میان مناظر را آشنا گذشت. صلب سرخ پیش از هنگام گل داده بودند استکانی های آبی را دید که جوان زده بودند، برگ های کوچک و جوان بلوت هنوز زرد قهوه ای بودند. برگهای نورس آلش چون برنج میدرخشیدند، فاخته به وضوح صدا در میداد و درخت غان همچون موجودی جنگلی پوشیده شده با توری سبز می نمود، جوانه های بهاری بر بوته های محبوبش رویده بودند، آلوریک زیر لب بارها و بارها با تمام این چیزها ودا کرد، فاخته به ندادادنش ادامه داد و نه برای او، و سپس هنگامی که از پرچینی گذشت و به دشتی بکر وارد شد، ناگهان درست روبرویش در دشت، سرحد شفق را دید، گونه که پدرش گفته بود. بر فراز دشت های روبرویش گسترده بود، آبی و متراکم چون آب، و آنچه از پس آن میدید دید، دگرگونه و درخشان بود. یک بار دیگر به پشت سر به دشت هایی که می نگریست. فاخته همچنان بی تفاوت ندادر در داد، پرنده کوچکی از عشقهای خود میخواند و گویی هیچ چیز به وداع او پاسخ یا اهمیت نمیداد. آلوریک گرفته و با گامهای بلند به درون آن توده طولانی شفق رفت. در دشتی نچندان دور مردی اصپایش را صدا میکرد مردم با همسایگانشان سخن میگفتند، ناگهان، تمامی این صداها مبهم و ضعیف شدند و گویی از فاصله ای دوردست به گوش می آمدند. دشتهایی که از میان آنها آمده بود، نایهان به پایان رسیده بودند. هیچ نشانی از درخشش خاربنهای نورویی نبود. برگشت و چونین مینمود نمود که سرحد شفق ابری و دودگونه پایین می آید، به پیرامونش نظر کرد و هیچ چیز آشنایی ندید. به جای زیبایی های شگفتی ها و شکوه سرزمین پریان را میدید. کوه های آبی روشن همایون در شکوهشان سر بودند. شکوه در نور زرین می لرزید و موج زنان و هماهنگ از چکاتها فرو می ریخت و چون نسیمی زرین از شیبها سرازیر می شد. و در پایین کوه در دور ها برج های نقره ای کاخی که تنها در ترانه ها از آن گفته سر به آسمان بلند کرده بود پیرامون کاخ را جنگلی از گل های غریب و درختان قولپیکر فرا گرفته بود آلوریک در دم به سوی برج های نقره ای به راه افتاد برای آنانی که تخیل خود را خیرتمندانه در درون مرزهای دشت‌هایی که میشناسیم نگه داشته‌اند، سخن گفتن درباره سرزمینی که آلوریک به آن رسید، دشوار است. به دشواری می‌توانند هامون را با درختان پراکنده و جنگل‌های تاریک دوردستش تصور کنند که برج‌های رخشان کاخ سرزمین پریان را در میان گرفته بودند. و نمی توانند دامنه زیبای کوه را بر فراز جنگلها ببینند که درخت های کاجشان از نور سرزمین ما هیچ رنگی نمیگیرند. اما برای همین است که تخیل ما به دور دستها پرواز می کند و اگر خوانندم به خاطر اشتباه من نتواند چکادهای های سرزمین پریان را در اندیشهش تصویر کند، بهتر بود تخیل من در دشتهایی که میشناسیم باقی می ماند. پس بدانید که در سرزمین پریان رنگها جرفتر از دشتهای ما هستند و هوای آنجا با چنان شفافیت شگرفی می درخشد که تمام چیزهایی که دیده می شوند در خود اثری از باستاب منظره درختان و گلهای تابستانی ما در آب دارند. و اما هنوز می توان از رنگ سرزمین پریان گفت که زبانم از گفتن آن کوتاه بود، چرا که نشانه هایی از آنها در اینجا هست. آبی تیره شب تابستانی درست پس از غروب، آبی روشن سیاره ناهید که شامگاهان با نور بازی میکند. رنگ تیره دریاچه ها در گرگ و میش، همه نشانه هایی از آن رنگ هستند، و همچنان که گل‌های آفتابگردان ما با دقت رو به خورشید می‌کنند، برخی از پیشینیان گلهای ختمی باید اندکی رو به سرزمین پریان می‌داشته‌اند. برای همین است که تا امروز کمی از آن شکوه در آنان باز مانده است. و بالاتر از همه، نقاشان دنیای ما نگاه‌های زودگذر بسیاری به آن سرزمین داشتهاند، برای همین گاهی افسونی در نگاره ها می بینیم که برای دشتهای ما غریب است. این افسون از این نظرهای زود گذر و به آبی روشن کوها آمده و در یاد کسانی مانده است که در برابر سپایه های نقاشی نشسته بودند و دشت هایی که می شناسیم را نقاشی می کردند. بدین ترتیب آلبریک در هوای نورانیان سرزمین گام برمیداشت هوایی که تجلی مبهم درخشش آن در یاد ما الهام دانسته می و ناگهان کمتر احساس تنهایی کرد. در دشتهایی که میشناسیم سدی صدی مشخص بین آدمیان و سایر زندگان کشیده شده است و اگر یک روز از نوع خودمان بدور باشیم تنها میمانیم. اما در آن سوی مرزهای شفق این صد فروروخته بود کلاغ‌های خلنگزار قریبانه او را می‌نگریستند رفتار تمامی موجودات کوچک متوجه کسی بود که از آن سو آمده بود از جایی که افراد کمی تا بدان هنگام آمده بودند می‌خواستند بدانند چه کسی سفری را آغاز کرده است که اندک افرادی از آن بازگشته بودند چرا که شاه پریان نیک مراقب دخترش بود، آلوریک این را میدانست، اما نمیدانست چگونه در همه آن چشمها درخششی از کنجکاوی بود و نگاهی شاید دهنده. شاید در آنجا رمز و راز کمتری وجود داشت تا در این سوی مرز شفق، چون هیچ چیز در پس درخت‌های عظیم بلوط او را به اشتباه نمیانداخت. برخلاف دشت که میشناسیم که در روشنایی ها و فصل های ممکن است چیزها ما را به اشتباه بیاندازند. هیچ چیز غریبی در آن سوی مرز وجود نداشت. هیچ چیز از میان جنگل تاریک نمی‌گذشت. هر چیزی که می توانست به فریبد به روشنی دیده می‌شد. هر گونه شگفتی که ممکن بود وجود داشته باشد در معرض دید کامل مسافر، گسترده بود، هرچه میتوانست در جنگل های تاریک رفت و آمد کند، در روز روشن در آنجا میزیست، و آن افسون چنان نیرومندانه بر تمامی آن سرزمین گسترده شده بود که نه تنها جانوران و انسانها منظور یکدیگر را خوب میفهمیدند، گویی گونه ای ادراک وجود داشت که از انسانها به درختان و از درختان به انسانها راه میافت، گویی درختان کاج تنهایی که آلبریک آن زمان و سپس در خلنگزار پشت سر گذاشت و تنهشان همواره با نور سرخی می درخشید که با جادو از غروبی کوهن گرفته شده بود با شاخه هاشان دست به کمر زده و برای نگاه کوتاهی به او خم شده بودند. کم و بیش چنین می نمود که گویی همواره و پیش از آن که جادو فرایشان بگیرد درخت نبودند. بویی میخواستند چیزی به او بگویند اما آلوریک به هیچ هشداری از جانوران یا درختان نکرد و به سوی جنگل افسون شده گام برداشت کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی مهران دوستیتی .me </mehran> نشانی ویبلاگ ما m الFA نقط مهران دوستی.بلفا.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی